داستان مار کشاورزی بود که هر روز برای کار کردن تو زمینای کشاورزیش به مزرعهش میرفت. اون سه تا دختر داشت. هر روز یکی از دخترها موقع ظهر برای پدرشون غذا می برد. یه روز که دختر اولی رفت تا برای پدرش غذا ببره و راه به یه جنگل رسید. خسته شده بود. تصمیم گرفت روی تخت سنگ بشینه و استراحت کنه. به محض اینکه نشست یه صدایی شنید. بعد از زیر همون سنگی که روش نشسته بود یه مار بزرگ اومد بیرون. دختره از ترس سبد و ول کرد و گفت آهای پاهای من به هم کمک کنید و گذاشت و در رفت. او روز کشاور سر زمین گشت وقتی برگشت خونه کلی دختراش رو دعوا کرد روز دوم دختر یه گفت من امروز برای پدر غذا برم اونم وقتی به جنگل رسید رفت روی تخت سنگ و نشست تا یکم استراحت کنه ولی به محض نشستن اونم یه صدایی شنید و بعدش هم مار از زیر سنگ بیرون اومد دختر بیچاره از ترس پا به فرار گذاشت. با عجله اومد خونه و ماجرا رو خواهرش تعریف کرد. خواهر سومیه گفت من که نمیترسم. خودم الان میرم برای پدرم قضا میبرم. میخوام برم ببینم اونجا چه خبره. دختر سوم به جای برداشتن یه سبد غذا، دو تا سبد غذا برداشت. وقتی که به جنگل رسید صدای مار رو شنید. به محض اینکه مار از زیر سنگ بیرون اومد یه سبد غذا بهش داد و بعد از اون مار شروع کرد به حرف زدن با دختر. مار به دختره گفت: منو با خودت ببر خونتون برات بخت و اقبال میارم. دختره با شنیدن این حرفا مارو گذاشت تو پیشوندش و سبد غذای پدرش رو برداشت و براه افتاد. بعد از اینکه به خونش برگشت، مارو زیر تختش قایم کرد. مار هر روز چاق و می شد. دیگه به جایی رسیده بود که نمیتونست زیر تخت جون بخوره. یه روز تصمیم گرفت که از زیر تخت بیاد بیرون و بره بیرون از خونه. اما قبل از رفتن، سه تا بخت به دختره بخشید بهش گفت وقتی که گریه می کی اشکای مرواریدی و نقره از چشمات میریزه وقتی که بخندی دونا طلایی انار میریزه وقتی که دستاتو میشوری از لای انگشتات انوای ماهیا بیرون میان بعدش هم رفت اون روز تو خونه کشاورز چیزی برای خوردن نبود مرد کشاورز و دختراش از گشنگی دلزعفه گرفته بودن اما دختر سومیه فوری شروع کرد به شستن دستاش تشت پر شده بود از ماهی خواهر اولی و خواهر دومی حسودیشون گرفته بود به پدرشون گفتن که حتما یه کلکی تو پاره اگه سلاح میدونید خواهرمونو باید زیر شیرونی زندونی کنیم. خلاصه. دختر بیچاره زیر شیربونی زندونی شد. اتاق زیر شیرونی یه پنجره داشت که به سمت باغ پادشاه بود. هر روز پسر پادشاه اونجا توپ بازی میکرد. یه روز که داشت توپ بازی میکرد، پاش لیس خورد و افتاد رو زمین. دختر که که از پنجره داشت نگاش میکرد شروع کرد به خندیدن تا خندید بارونی از دونه های طلایی انار ریخ پایین پسر پادشاه سر در نمی آورد به خودش میگفت اینا از کجا دارم میریزن پایین دختر فوری پنجره رو بست فردای اون روز که پسر پادشاه طبق معمول دوباره داشت تو باغ توپ بازی میکرد متوجه شد که یه درخت بلند پر از میوه انار در اومده. خواست انارها رو بچینه. اما درخت همین طور بزرگتر میشد تا شاصد دستشو بلند می کند رو بچینه، درخت بلندتر و بلندتر می شد. از اونجایی که هیچکی نمیتونست نمی حتی یه برگز اون درخت رو بچینه، پادشاه، فرستاد دنبال داناترین آدم شهر تا و براش توضیح بدن که قضیه هست چه قراره. یکی از پیرترین آدمای شهر، وقتی اومد پیش درخت، به پادشاه گفت: فقط یه دختر میتونه اون میوه ها رو بچینه. وقتی که اون دختره رو پیدا کردین، اون باید بشه زن شاهزاده. پادشاه دستور داد تموم دخترای در وقت شهر رو پیدا کنن و بیارن. دختر رو از همه طرف اومده بودن. اما مگه کسی حریف میوه ها می حتی دوتا دختر بزرگای کشاورزم اومده بودن. ولی از نردبون افتادن و پاهاشون شکست. پادشاه خدمتکارای خودش رو فرستاده بود تا خونه ها رو خوب بگردن. ببینن آیا دختر دیگه ای پیدا می که بتونه این میوه ها رو بکنه؟ خلاصه. خدمتکارا انقدر توی شهر گشتن و گشتن تا دختر سومی کشاورز رو که زیر شیربونی زندونیش کرده بودن هم پیدا کردن. دختره رو آوردن پای درخت. تا دختره رو آوردن پای درخت شاخه های درخت خم شدن و انا رو افتادن رو دستای دخترک. همه یا که اونجا بودن خوشحال شدن و فریاد کشیدن پس این دختر عروس پادشاهه سروزات عروسی به پا شد خواهرای حسودن به جشن عروسی دعوت بودند هر تا خواهر سوار یک کالسکه شدند و به راه افتادند به سمت قصر وسط جنگل ایستادند دو تا خواهر بزرگتر خواهر کوچیکشون رو پیاده کردند میخواستن یه بلایی سرش بیارن اونم چه بلایی تا میتونست کتکش زدن بعدشم دستاشو بریدن و چشماشم در آوردن بعدشم لای درختا برش کردن به امون خدا قاهر بزرگتره لباس عروس عروسو تنش کرد و با اون ریخت و قیافه رفت پیش پسر پادشاه. پسر پادشاه سر در نمی آورد. با خودش گفت: چرا این دختر اینقدر بد ترکیب شده؟ ولی چون یه مقدار شباهت به هم داشتن، فکرت داره اشتباه میکنه. شاید روزای دیگه قشنگتر بشه. دختر سومیه پادشاه بدون چشم، بدون دست ناراحت و گریون توی جنگل باقی مونده بود که مرد سوارکار که داشت از اونجا رد میشد دلش به حال دختر سوخت و اونو با خودش آورد بخونشون دختره به مرد سوارکار گفت زمین رو نگاه کن زمین پر بود از مروارید و نقرهای که از چشمای دخترک ریخته بود مرد سوارکار همه اونارو جمع کرد و بعدم به بازار برد و فروخت بیشتر از هزار لیر گیرش اومده بود با وجود اینکه دختر نه چشم داشت و نه دست و نمیتونست تو کارا کمکش کنه اما یا خوش و خورم هم با همدیگه زندگی میکردن یه روز دختره حس کرد یه مار دور پاش چنبره زده همون ماره بود همون که بهش اون بخت و اقبال رو بخشیده بود ماره به دختر گفت از خواهرت خبر داری که زن پسر پادشاه شده؟ خود پادشاه هم مرده. اونم ملکه شده. حالا باردار بارداره و انجیر کرده. دختره مرد سوارکار گفت یه سبد پر از انجیر بکن و به برواسه ملکه. مرد سوارکار گفت تو این فصل انجیر از کجا گیر بیارم؟ الان زمستونه. ولی فردوس و وقتی از خواب بیدار شد تو باخچه خونشون یه درخت انجیر دید که بدون برگه اما پر از میوه انجیره. دوتا سبد برداشت و پر از انجیر کرد و به سمت قصر راه افتاد. قبل رفتن به دختره گفت خب این انجیرای زمستونی رو باید چقدر بفروشم؟ دکتره بهش گفت تو باید در عوض این سبدای انجیر که به ملکه میدی یه جفت چشم ازش بخوای. مرد سوارکارم براه افتاد رفت. وقتی که به قصر رسید و سبدا رو به ملکه داد بهش گفت که من در قبال این سبدای انجیر یه جفت چشم میخوام. ملکه و پادشاه و خواهرش چشم خودشونو که نمیتونستن بدن به خاطر همین دوتا تا خواهر یکم تو گوش هم پچ پچ کردن و گفتن خب چشای های رو بهش میدیم به درد که نمیخوره. و بالاخره انجیرا رو با اون چشما عوض کردن. مرد به خونه برگشت و چشما رو برای دخترک آورد. اونو رو گذاشت سر جاش روی صورتش و دخترک مثل اول شروع کرد به دیدن. چند روز بعد ملکه حوث حلو کرد. پادشاه دوباره فرستاد دنبال مرد سوارکار که ببینه آیا میتونه براش حلو بیاره؟ و چند روز بعد مرد سوارکار با یه سبد پر از میوه هلو به قصر برگشت وقتی که داشت به راه به دختره گفت در عوض این میوه ها چی باید از ملکه بگیرم دختره به مرد سوارکار گفت این دفعه که این میوه ها رو براشون بردی در عوضش برام باید یه جفت دست بگیری اما مگه هیچکی حتی پادشاه میتونست به خاطر یه سبت حولو دستشو به کس دیگه ای بده این بار هم خواهرای بر جنس با هم صحبت کردند. بعدم به این نتیجه رسیدن که دستای خوهرشون رو میتونن بدن. مرد سوارکار با خوشحالی به خونه برگشت و دستها رو به دختره داد. اونو رو, رو روی شونه دخترک چسبوند. دخترک خیلی خوشحال شده بود. چون هم چشمش برگشته بودند و هم دستاش بلاخره چند روز بعد ملکه بچه خودش رو به دنیا آورد اما به جای یه بچه یه اغرب به دنیا اومده بود پادشاه برای ملکه جشنی به پا کرد که تموم دنیا توش دعوت بودن حتی دختر سومی کشاورزم لباس ملکه ها رو پوشیده بود و توی اون مهمونی شرکت کرده بود اون دختر از همه قشنگتر بود. انقدر سیبا شده بود که پادشاه همونجا جا شد. بعدم متوجه شد که اون همون زن سابقشه. اون لحظه دختر خندید و دونه های بارید. گریه کرد و زمین پر از مروارید شد. دستاش و شست و تشت پر از ماهی شد. و خلاصه با خنده و گریه و سرازیر کردن دونه های مروارید و ماهی همه ی داستانش رو برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه وقتی متوجه قضیه شد، اون دوتا خوهر برجنس و اغربی که به دنیا اومده بود رو توی یه تنور هیزومی بلند سوزوند. هم همون روز جشن عروسی بزرگی به پا کرد. و بعد هم پادشاه و دختر سوم کشاورز با خوبی و خوشی با هم زندگی کردم کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای سوختی. نشانی کانال تلگرامی t.m.e/مهران دوستی t.m.e/slash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 dotblockfor.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی